صاحب آپارتمان ما در آپارتمانی هفت طبقه می نشینم پنج طبقه آپارتمانمان بالای زمین و دو طبقهش مثل معدن زغال سنگ زیر زمین است زیر این دو طبقه یک نیم طبقه هم هست یک چیستان داریم که میگوید زیر زمین کله بابام من هم مثل کله بابام زیر زمین توی این نیم طبقه زندگی می کنم. سقف طبقه ما خیلی کوتاه و پست است. آنقدر که بعد از دو سال هنوز درست نفهمیده ام صاحب آپارتمان ما پستر است یا سقفش. با آنکه قد کوتاه مانده ام تا به هم بگویند آدم زرنگ و باهوشی است و سرم به سقف و سر سردر جایی نخورد سقف اینجا مثل شمشیر داموکلس روزی دو سه بار به سرم می خورد. انگار که به مشتار بدهد و بگوید به خودت بیا به سر، به اینجا استانبال دیگه ای نیست. من هم از خانه خیلی راضیم، چون چیزی به اسم منظره نداریم. اشتهای اهل خانه روز به روز کمتر می شود و اینطوری با مداخل من در داخل خانه من و در دایره ناموس من به راحتی روزگار میگذرانیم. از آنجا که هوا هم به زور به خانه من می رسد خطر جلوی بادماندن و چاییدن و سرماخوردن هم تهدیدمان من تازه آفتابگیر نبودن بهترین ویژگی خانهمان است. چون اینطوری رنگ پردههامان نمی پرد. رنگ ما هم نمی پرد. خانه خانهمان یک خوبی دیگر هم دارد. چون از سطح زمین پایینتر است، آدمهایی که عادت به دید زدن دارند نمیتند از پنجره خانهمان داخلش را دید بزنند. برای دیدن آنچه در طبقه ما میگذرد باید از وسیله مثل پریسکوپ زیردریایی استفاده کنند. البته خدا رو شکر توی این دو سال در این خانه حالی هم برای ما نمانده که به درد تماشا کردن بخورد. اگر کسی برای دید زدن داخل خانه بیاید بدجوری شرمندهش می میشویم. خانه ما انقدر خوبی دارد که هر بگویی باز هم کم است. به هیچ وجه امکان ندارد خانه ما بی آب بماند. اگر آب همه جای استانبول قطع شود استانبول از بی آبی بسوزد و کباب شود باز ما بی آب نمی ماند. تابستان و زمستان دیوارهای خانه ما آب پس می دهد. یک شیر بگیر دستت، هر جای دیوار که دوست داری شیر را بکوب و بازش کن. آب با فشار سرازیر می شود. البته این همه زحمت لازم نیست. توی آشفاسخانه چند تا چاله هست. ملاقه را بگیر دستت و هر قدر خواستی آب از ها بکش. مستجر قبلی آدم زرنگی بوده. طاقت نداشته ببیند تابستان ها استانبول از تشنگی حلاق شوند. چند تا شیر توی دیوارهای خانه فرو کرده و شیشه شیشه آب جمع کرده. بعد این آب را با اسم آب چشمه دیوار وارد بازار کرده. بعد طوری شده بوده که جلوی خانه ایمان جا برای سوزن انداختن نبوده. همه یا های شهر جمع می‌شدند آنجا و جلوی در صف میکشیدند. میگویند این آب چشمه دیوار آنقدر مؤثر بوده که هر کس دو شیشه از آن میخورده هر چه درون بدنش بوده تمیز می‌شود. از آنجا که خوردن بیش از ده شیشه از این آب نه تنها سنگ کلیه و مسانه را میانداخته، بلکه خود کلیه ها و مسانه و روده ها را هم میانداخته. آب چشمه دیوار را پس از آن با نسخه میفروختند. صاحبخانهمان که دیده دارد درآمد خوبی را از دست می دهد تصمیم میگیرد مستعجر را بیرون کند. اما مستعجر پیش از ما هم از آن استانبولی های زرنگ بوده. تا صاحبخانه می گوید خونه رو خالی کنید میخوام پسرمو زن بدم فوری از پزشکی قانونی میخواهد صاحبخانه را معاینه کنند از گزارش پزشکی قانونی معلوم میشه و صاحبخانه ععین است و نه پسرش می و نه دخترش. اما صاحبخانه زرنگتر از او بوده میرود از شهرداری و اداره بهداشت نامه میگیرد مبنی بر اینکه آپارتمان غیر قابل سکونت هست و اینطوری مستعجر را بیرون میکنند. آن موقع بود که ما به اینجا احساس کشی کردیم اما در اجار نامه ما ماده‌ای هست که در آن نوشته شده حق نداریم آب دیوار را بفروشیم. راستش از آنجا که صاحبخانه ما جهت بیشتر آب را به آپارتمان بغلی گردانده، دیوارهای ما آنقدر آب ندارند که بخواهیم بفروشیم. همینقدر هست که به مصرف خودمان برسد. توی طبقه ما یک چیز خیلی مهمتر هست. دیوارهای راه رو از رطوبت شوره می‌بندند. هر روز صبح حدود یک کیلو شوره از روی دیوارها جمع لابد میدانید دانید که شوره یا همان نیترات پتاسیم ماده شیمیایی گران قیمتی است ما شوره ای را که جمع کرده این به سفیدگرها میفروشیم مدام دلواره داریم که نکند صاحب خانه بفهمد اگر بشنود که از فروش شوره دیوار کاسبی کنیم فوری از خانه بیرون من میکنه خانه من آنقدر خوبی دارد که هر چقدر بگویی باز هم کم است حالا یکی دیگر از خوبی هایش را میگویم به خانه ما اصلا مهمان نمی آید. اگر خانه ی آفتابگیر و دلبازی بود، از دست مهمان فرصت نمی کردیم سر را به حالا این آپارتمان با این اوضا و احوال برای خودش اسم هم در کرده. وقتی از آدم می پرسند کجا می شینید? همین که بگویی توی فلان آپارتمان خودش کلی ارزش دارد. صاحب آپارتمان اول برج که می شود در خانه من را می زند. کارش انقدر دقیقه است که ما هم با آمدن صاحب خانه می فهمیم اول برج شده. اگر بگوییم یکی دو روز فرصت بدهید تا اجاره خانه را آماده کنیم چونان گریه وزاری می کند چونان نالهی می کند که آدم درش میخواهد از هر جایی شده مقداری پول اضافه هم گیر بیاورد و بگذارد روی پول اجار خانه و بهش بدهد. مرد بیچار میگوید ماهی باید چند هزار لیره قسط بدهد دفترچه قسطش را هم هر ماه با خودش میآورد و نشان ما میدهد و میگوید اگر باور نمیکنین خودتون بگیرین نگاه کنیم خانه ما ویژگی دیگری هم داره توی خانه امان از مورچ و مگس و پشه بگیر تا هزار پا، سوسک شاخدار، اقرب، سوسک حمام کرم، انکبوت، کک و ساس، خلاص انوا و اقسام حشرات شناخته شده و شناخته نشده هست. میگویند آن سالها که تازه این آپارتمان را ساخته بودند، یک پروفسور هشرشناس آلمانی که در دانشگاه استانبول تدریس می کرده، توی طبقه ما تحقیقات انجام داده. و سه و هشره کشف کرده که تا آن موقع در دنیای حشر شناسی ناشناخته بوده. تازه از همین طبقه ما بزرگترین کلکسیون حشرات دنیا رو هم جمعوری کرده. صاحب آپارتمان وقتی داشت این طبقه را به ما اجاره میداد اینها را برای ما تعریف کرد و اون آلمانیه می گفت. اون پروفسور آلمانی میگفت شماها لیاقت ندارین قدر هیچ چیزو نمیدونین. اگه همچین جایی تو آلمان بود فوری می کردیمش موزه جانور شناسی. اصلا لازم نیست بچه مدرسه بفرست. اینجا همه جور حیوانی رو میبینن و یاد میگیرن. واسه همین اجاره اینجا رو یه لیره هم کم نمیکنم. تازه. دارم ارزونم میدم. صاحب اپارتمان ما اولش سرایدار آپارتمان بوده. اول اتاق سرایداری و بعد کل آپارتمان را صاحب میشود. یک ماه نتوانسته بودم اجاره خانم را بدهم. صاحب آپارتمان ما فوراً خودش را به اداره مجلعی رسان که در آن کار می کردم رئیسم زود شناختش چون بیست سال قبل سرایدار آپارتمانشان بوده بحبه علی افندی تو کجا اینجا کجا؟ اومدم اجارهمو بگیرم اجاره چیو؟ این حسن بیک مستجر آپارتمانمه اومدم چی؟ مگه تو آپارتمانم داری؟ صاحب آپارتمان ما از اینکه رئیسم تعجب کرده بود خیلی گفت انصاف بدین آقا بیست و دو سال تو این استانبول خراب شده دارم جون میکنم اون وقت یا آپارتمانم نداشته باشم من از اینکه زاده و بزرگ شده استانبولم و به بیست و دو سال چهل و دو سال است که در این شهر زندگی میکنم خجالت زده شدم و از شرم سرم را پایین انداختم از آن روز به بعد اگر کسی از بپرسد اهل کجایی میگویم اهل سیواسم هنوز شیشما نشده اومدم استانبول. صاحب آپارتمان ما علاوه بر این آپارتمانی که ما ساکنش هستیم یک آپارتمان دیگر، خانهای در نشانتاشی، چند قطعه زمین در های مختلف و یک مغازه هم دارد. سر برج که برای گرفتن اجاره خانه می آید اگر صحبت بدهی هایش را بکند و دفترچه های اقصادش را نشان بدهد، می گویم ای بابا علی افندی، ماشاءالله این همه مال املاک و چجوری جمع کردی؟ او هم همیشه در جواب میگوید. اگه جمع نمی کردیم زشت بود حسنبک آخه بیست و دو سال توی این استانبول دارم جون میکنم دیروز برای بزرگی سر صاحب آپارتمانو مأمورها مرد بیچاره را موقعی که داشته جنس قاچاق خرید و فروش میکرده گرفته بود دادستانی هم فرستاده بودش زندان خب انسانیت که نمارده مرد بینوا این همه خوبی در عبقه ما کرده چهار پاکت سیگار گرفتم و به ملاقاتش رفتم پشت های زندان داشت گرگه می کرد. برای آرام کردن صاحب خانه گفتم خودتو ناراحت نکننی یفندی. بیست و دو سال تو این استانبول خراب شده ای؟ یه بار هم زندون نری عیبی نداره. از این به بعد مرتب تبنیری آزاد میشی. عادت میکنی. عیبی نداره.